اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا مخافظا مقايدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعى فتمتعه فيها طويلة السلام عليكم يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوبة بحمد الله دار بحسه استناداتی که به روایات اهل بیت اسمت و تهارت از طرف قائلین به وحدت شخصی وجود شده است در این بحث بودیم استناد دومی که ما انشاء الله به اون اشاره میکنیم اینه که به یک روایتی در کتاب کافی شریف در معنای الله و اکبر بعضی تمسک کردن که این رو مرحوم کلینی ناقل می‌کنند و رواه محمد بن یحیی ان احمد بن محمد بن عیسی آن مربکه بن عبید که این حاسقه هستند آن جمعیر بن امید که این فرد اطلاعاتی ازش در دسترس نیست و شخص مشهولی است قال ابو عبدالله علیه السلام این فرد نقل می‌کند که آقا امام صادق علیه السلام فرمودند ای شیئن الله اکبر در الله اکبر سؤال پرسیدن حضرت فقل تو من گفتم الله اکبر من کل شی خداوند متعال از هر چیزی بزرگتر است فقال و کانسم مشی اون فیکون اکبر من مگر در آنجا چیزی هست که خداوند متعال از اون بزرگتر باشد فقل تو و ما هوه پس چه بگویم این چیست الله اکبر قال الله اکبر من این یوسف خداوند متعال بزرگتر از این است که به وصف بیاید که این در کتاب توحید باب معان الاسماء اشتقاقها ها حدیث شماره نه خب این استدلال استدلاب که در این روایت حضرت میپرسند مگر چیزی هست که خداوند متعال بزرگتر از آن باشد خب معلوم است که حضرت در این حدیث شریف دارند نفی غیر خدا رو میکنند که غیر از خدا اصلا چیزی نیست که خداوند متعال بخواهد از اون بزرگتر باشد و این دلالت دارد بر این که فقط آنچه که هست خداوند متعال هست و طبعا هم هرچه هستند اونها هم باید خدا باشند و وجودشون وجود خداوند متعال هست و غیر خداوند متعال نیستند که اون این همون مفاد وحدت شخصی وجود هست. خب ما در نقد این دیگه خیلی از نقدها رو فکر میکنم عزیزان تا به اینجا هم این رو یاد گرفتن و خودشون می توانند های مفصلی و بیشتری رو ارائه بدن. من به خود همین معنای روایت اکتفا میکنم در نقد این کلام که اینها این روایت رو دقیق نکرده اند. زیرا در این روایت کلمه سمه آمده که سمه اسم اشاره است به مکان اون هم بعید یعنی به معنای آنجا هست نه اون هم اینجا و طبق این اسم اشاره, اشاره که حضرت فرمودن و کانه سمه اون اونجا مگر چیزی هست یا پس باید اونجا چیزی باشد که خداوند متعال از اون بزرگتر باشد خب چرا حضرت نفرمودند به نحو مطلق نفرمودند آیا چیزی هست که خداوند متعال از اون بزرگتر باشد چرا این رو نفرمودند چرا مثلا اسم اشاره هم که میخواهند به کار می‌برند اولا چرا اسم اشاره به کار بردن به مطلق می‌فرمودند چرا اسم اشاره بعید معمولا در لسان خداوند متعال از این استعمالات هست و کذالک الله ربی که از این گونه اسم اشاره به نحو بعید هست استعمال شده خب معنای روایت هم همین می شود مگر آنجا چیزی هست که خداوند از آن بزرگتر باشد خب پس اولا نفی اشیاء دیگر در همه جا نشد در یک جای خاصی اون هم بعید نفی چیز دیگری شد خب این چه ربطی به وحدت شخصی وجود داره؟ سر ربطی ندارد و بلکه اتفاقا با این تغییر معلوم است که در بقیه جاهایی که حضرت مورد نظرشان هست چیزهای دیگری وجود دارد چیزها هستند، اما در اون جای خاص مد نظر حضرت چیز دیگری نیست که خداوند متعال بخواهد از آن بزرگتر باشد که خود همین اتفاقا رد وحدت شخصی وجود هست و سمه کما این که در لسان آیات و روایات از این اسم اشاره های بعید زیاد به کار رفته اشاره به اون مقام الوهیت و ربوبیت و لاحدیت و لا مکانیت و لاکیفیت خداوند متعال هست که حضرت دارن میگن که دارن میفرماین که مگر در ردیف خداوند متعال در اون مقام عالی در اون جای عالی در اون مقام لا خداوند متعال که در اونجا دیگه مکان معنا ندارد، کیف معنا ندارد، زمان معنا ندارد، همه اینها رو خداوند متعال خلق کرده در اونجا در ردیف خداوند متعال در مقام الوهیت خالقیت خداوند متعال مگر چیزی غیر از خداوند متعال هست که اون وقت خداوند متعال از آن بزرگتر باشد که پس معنای این عبارت هم کاملا معلوم شد و کاملا این روایت هم معناش مشخص شد که نه تنها که ربطی به وحدت شخصی وجود ندارد بلکه این در واقع رد وحدت شخصی وجود خواهد بود مورد سومی که به روایات تمسک کردند بعضی از افراد دیده شده هم از کسانی که حالا مشیه سنی دارند و هم در بین علمان شیعه به این کلام تمسک کردن در اثبات وحدت شخصی وجود به شعر لبید هست که اینها تمسک کردن که این شعر در نسبه و آمده نقل شده رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم که حضرت فرمودند صادقترین کلمه عرب همین شعر هست که الا کل شیء ماخر الله باطلان آگاه باشید هر چیزی جز خداوند متعال باطل هست. خب اینها گفتند که وقتی که غیر از خدا باطل هست یعنی غیر از خدا نیست و همه چیز وجودش وجود خداست غیر از خدا که نباشد ما هم غیر از خدا نیستیم. ما اگر هستیم یعنی همان خداییم وجودمون وجود خدا هست و ما سوای خدا حقیقتا چیزی نیست که این همان وحدت شخصی وجود هست که در حالا تبیین وحدت شخصی وجود هم دیدیم که در یک رفت و برگشت هایی بودن که دقیقاً بالاخره معنا بکنن که چی میخواهند بگویند بیان بکنند که چی میخواهند بگویند خب به این تمسکات هم واضحتر میشود که اونها چه میخواهند بگویند اگر ما الله باطل است، پس ما هم که هستیم ما الله نیستیم و هممون خدا هستیم و وجودمون وجود خداست خب در نقد این مسئله هم انشاءالله عزیزان نقدهای دیگری هم توانن اضافه بکنن ما باز مختصرا ارز میکنم که دیگه خیلی مسدق نشیم با قطع نظر از بحث صحت یا عدم صحت کتاب مسباب شریعه به امام صادق علیه السلام که بحث مفصلی در این زمینه وجود داره که آیا اصلا این کتاب کتابی است که این جعل شده و نوشته شده یا حقیقتا این کتاب کتاب آقا امام صادق علیه السلام هست و حضرت این رو فرمودن که خب بحث بسیار مفصلی در این زمینه وجود داره و در هر دو طرف کلام هم علمای بزرگی قرار دارند که خب ما ورود به این بحث اصلا پیدا نمی کنیم. فقط نکته‌ای رو که اشاره می این است که حالا در خود همین روایت کلمه باطل معنا شده در چند جمله قبل از همین جمله‌ای که در این کلام آمده خود معنای باطل بیان شده و روشن شده و دیگر نیازی به نقدهای دیگر نیست و اینکه حالا ما باطل رو هم باز اشاراتی داشته باشیم که اصلا باطل به چه معنا هست باطل به معنای عدم اصلا نیست خب دیگه نیازی به این بحث ها هم نیست و خود همین روایت بیان شده که این مصباح شریعه باب 67 در بیان حق و باطل آمده که حضرت میفرمایند عمل و امل باطل باطل که عن الله اون چیزی است که تو را از خدا می بارد. هر چیزی که تو را از خدا میبارد تو را از خدا دور میکند اون باطل است یتفق علیه ایزن کل فریق همه فرقه ها هم بر این متفق هستند قبول دارن که هر چیزی که انسان رو از خدا دور بکنه نذاره انسان به خدا برسد این باطل از فشتن بان پس اگر اینها باطل هستند و اینها هستند چیزهایی هستند که انسان را از خدا دور میکنه تو هم از اون اجتناب بکن و افرد سر الله تعالی بلا الاغتن دل خودت رو خالص بکن برای خداوند متعال قال رسول الله صلى الله عليه و علیه و سلم رسول خدا صلى الله علیه و علیه و سلم فرمودن استغو کلمتن قالت عرب کلمتن قالها لبید صادق ترین کلمه که عرب اون رو گفته کلمه است اون رو لبید گفته که در یک شعر هست علا كل شیئن ما الله باطل و کلو نعیم لا محالت زائلون بدانید که هر چیزی جز خداوند متعال باطل است و هر نعیمی هم بالاخره این نعمت اون زائل می شود لذا شما دنبال خدا باشید دنبال آخرت باشید خب طبق همین روایت معنای این خل الله باطلون می شود که ماخر الله یقتعا که الله هر چیزی که جز خدا باشد جز خداوند متعال شما رو از خداوند متعال دور می کند شما رو از خداوند متعال میبرد. اموری که خدایی نیست اموری که برای رضای خداوند متعال نیست دیت خدایی درون نشده شما رو از خداوند متعال دور میکند فجتنب ان و از اون اجتناب بکن که همین حبارت اتفاقا فچتنب ان این اتفاقا رد وحدت شخصی وجود هم خواهد بود یعنی هستند غیر خداوند متعال و باید شما از اونها اجتناب بکنید که خب پس خیلی واضح است که این کلام هم نه تنها ربطی به وحدت شخصی وجود نداره بلکه رد اون هم هست مورد چهارمی که قابل اشاره هست به استدلالاتی که به روایات اهل بیت اسمت و تهارت شده فیدیه حالا این هم که ارز میکنیم قابل اشاره هست خب مشاهده می‌فرمایید که بسیار این استدلالات استدلالات ضعیف و دور از وادی هست که واقعا صرف یک نحوه دست پا پازدن هست در تمسک به اینها حالا بازم در اینها دیگه تقریبا اون چیزهایی که مطرح هست به نحوه گاهی اوقات عمومیتر تر و اینی که بیشتر تمسک کردن بعضی دیگه خیلی ممکنه که پرتر باشد از این امور حتی اینی که شما میبینید بعضی دستلال ها که دیگه خیلی دورتر از این حرف که اصلا شاید شأنیت تره رو هم نداشته باشه ولی ما از طرح ها خودداری میکنیم که خیلی مسده اوقات نشویم و مزاحم بر این که دیگه نحوه این ورود و خروج ها رو در ولسی روایات به همدلله انشاءالله این فرا گرفته شده و از این جهت مشکلی نیست گفتم که اسراری رو که اهل بیت اسمت و طهارت به خواص خود فرمودهاند خب ما ببینیم که اهل بیت گایوات صحبت از سر می کنند. یک کسانی رو دارند دنوان اصحاب سر خب به اینها یک چیزهایی رو فرمودند. خب اینی که به اصحاب خودشون فرمودن طبعا مسائل احکام حیز و نفاظ که نبوده خب اینها مشکلی نبوده و خب وقتی که اون مسائل نبوده چه میتواند باشد حتما همین وحدت شخصی وجود اینها میباشد و دارند اهل بیت مسائل توحیدی این رقمی رو بیان میکنند که در نقد این ما به نکات اشاره میکنیم اولا مسئله وحدت وجود و وحدت شخصی یک مسئله ساده و بسیط و ابتدایی از حیث اندیشه بشری هست که این رو در جلسات گذشته مفصل به اون پرداختیم و چیزی نبوده که جزء اسرار باشه و اتفاقا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همون ابتدای دعوت خودشون به بت ها میگفتن که خب چرا فقط بودها خدا باشند بلکه خود شما هم خدا هستید و وجود خود شما هم همون وجود خداست خب اگر این رو از همان ابتدای دعوت خودشون به بت پرستان میگفتند اونها اتفاقا خوشحال هم میشدند و به راحتی میپذیرفتند و شاید حالتی شبیه حالت فرعون به اونها دست میداد که انا ربکم رب الاهلا و ومسلمانان هم همینطور اونها اگر از همون ابتدا اسلام رو اینگونه میشناختند و میپذیرفتند دیگه مشکلی در این زمینه وجود نداشت و بهراحتی این رو میپذیرفتند و اسلام رو اصلا اینگونه میشناختند و مشخصه اسلام رو در توحید این میدانستند در حالی که میبینیم اینگونه نبوده و توحید اسلامی با بیانات بسیار متعدد با سوز و گداز از لسان اهل بیت اسمت و تهارت از لسان رسول خدا به نحو دیگری بیان شده که خود بیان توحید اسلامی و توحید روایات انشارلا در محضر اهل بیت اسمت و تهارت خودش مجال بسیار مفصلی رو میطلبه دومین نکته ای رو که باید اشاره بکنیم اینه که در زمان خلفای جور که هر فکر انحرافی امل هدانه به راحتی رده میشد و زنادقه متعددی وجود داشتند که در همه چیز آنها تشکیک میکردند و حمایت های دستگاه جور از این افکار مخصوصا در زمان نهست ترجمه که خود دستگاه خلفای جور حامیان اینها بودند و افکار مختلف هر نحوه فکری این ترجمه میشد و وارد فضای اسلام میشد در مناظراتی که خود معمون اونها رو ترتیب میداد در مباحث دیگر میدیدیم میبینیم که چند اندازه افکار مختلف اینها تح می میشده و ملحدان و, و کسانی که دهری بودند خدا را همت تا قبول نداشتن به راحتی اینها حرف میزدند و تشکیک میکردند و کسی مانع اونها نبود و انحرافات فراوانی که در اون زمان علمای اهل سنت داشتند و حرفهای مختلف و متشدتی که از اونها سر میزد نزاعهایی که با هم داشتند اینها از یک طرف در اون زمان از طرف دیگر وجود خرق پوشان دغلکاری مثل حسن بصری که مورد لعن حرونات نازنین اهل بیت اسمت و تارت هست مثل سفیان سوری که می آمده خدمت امام صادق به امام صادق ایراد می گرفته مثل عبل خطاب که دائیه تکلم با خدا رو داره دمیدونم دائیه یک بسیاری از چیزها داره کسانی که می ما خدا رو مثلا مشاهده کردیم این خرق پوشانی که افراد زیادی رو هم اتفاقا دور خودشون جمع می کردن. بسیاری که از کلماتشون بی اعتنائی به اهل بیت اسمت و تهارت در می و فهمیده می شود که به زحاد هم بسیاری از اینها معروف بودن در یک همچنین زمانی اگر اهل بیت اسمت و تهارت اگر وحدت شخصیه را می نه تنها که مشکلی ایجاد نمی کرد بلکه اتفاقا مورد حمایت بیشتر اینان قرار می گرفت و لذا چیزی نبوده که به این نحوه بخواهد سر باشد و جزو اسرار اهل بیت باشد نکته سوم اینکه اهل بیت اسمت تعالت علیهم السلام در عین اینکه با بیانات متعدد شدیدا نهی از تفکر در خداوند متعال کردند فرمودند در خداوند متعال تفکر نکنید بلکه اگر هم میخواهید در توحید تفکری بکنید در خلق خدا تفکری بکنید با همه این نحی شدیدی که در تفکر فلاح اینها کرده اند، از طرف دیگر دستور شدید به کسب معرفت و شناخت خودشون رو داده اند که این معرفت اهل بیت اسمت و تارت دارای مراتب و درجات بسیار زیادی است که علاوه بر اینکه به درجات بالای این معرفت اهل بیت اسمت و تهارت جز خواست اصحابشون و اصحاب سرشون راه نداشته اند، گاهی اوقات خفقان به حدی بوده که حتی در درجات اولیه اون مثل حتی اعلام امامت خودشون که همه شیعیان هم باید اون رو میدانستند، وجودات نازنین بیت احیانا نمیتوانستند خاطر اون خفقان شدید در این زمینه سخن بگویند و علاوه بر اینکه خطر برای خودشون داشت برای شیعیانشون هم بسیار خطرناک بود لذا این اوج مظلومیت اهل بیت اسمت و طهارت رو میرساند که گاهی مجبور بودند بیایند به خلفای جور این لقب اختصاصی آقا علی ابن ابی طالب علیه امیر امیرالمؤمنین رو این لقب رو به خلفای جور مثلا با این لقب اونها رو صدا بزنند این اوج مظلومیت و خفقان شدید در اون زمانها رو نشون میده لذا خب مطالب معرفتی در مورد خودشون معرف خودشون این معرفت الامام و معرفت اهل بیت اسمت و تهارت، جزفه اسرار مرودات نازنین اهل بیت اسمت و تهارت به حساب می آمده. و همینطور سایر علومی که معمولاً آمه اونها رو نمی و اون رو مشخصه شیعه میدانستند، به مقابله با اونها مثلا می پرداختن از طرفی میبینیم که به بسیاری از افکار بیاعتناع هستند اما افکاری که مخصوص ائمه طاهرین علیهماسلام هست اینها بسیار به مقابله میپردازند لذا خب اینها هم چه بسا جزو اسرار این وجودات نازنین اهل بیت اسمت و تهارت باشه لذا میبینیم روایات فراوانی در تقیه وارد شده در منزلت تقیه وارد شده در عدم ازاغه اسرار اهل بیت اسمت و تهارت به غیر شیعیان روایاتی وارد شده. فرمودن که اینها رو نقل نکنید مگر به کسانی که اینها غروبشون نورانی هست به ولایت ما اهل بیت اسمت و تهارت. و گاهی اوقات حتی ممانعتهایی که از بعضی از اصحاب خودشون مثلا در بعضی از مواقع مثل جناب حشق ابن حکم می که مثلا در بعضی از مواقع ممکنه که مناظره هم حتی به سلاح نباشد چون خطر دارد برای مثلا شیعیان برای اهل بیت اسمت و تارت خب اینها روایات متعددی در این زمین وارد شده در زمینه اینکه حدیثنا صعب مستسعب حدیث ما اهل بیت که الا حدیثنا همه رو شامل میشه هم یعنی کلام ما احل بیت هم حدیثی که در مورد خودمان هست اون مطالب معرفتی خودمون اینها بسیار صعب و مستسعب هست روایاتی در این زمینه وارد شده که اینها جزء اسرار ما هست که این روایات در کافی باب اینکه که حدیث اونا این در کتاب الحجه وارد شده لفظ سر در اونجا به کار رفته و حتی در روایات دیگری که در مورد معرفت خود اهل بیت اسمت و طهارت هست در مورد منزلت شیعیان اسمت و طهارت هست تعبیل عجیبی وارد شده مثل اینکه اینها مثلا جُزوه بتون سرایرنا هستند با باتنهای اسرار ما هستند یا مطالب دیگری از این زمینه که حضرت می‌فرماید اینها رو به هر کسی مثلا نش نده خب از همه اینها معلوم می شود که این اسرار اهل بیت اسمت و چیز دیگری غیر از چیزی که اینها میگویند هست خب تا هم اینجا این بحث نقد وحدت شخصی وجود رو به پایان میبریم لازم است که یک جمع مختصری داشته باشیم خب بعد از اینکه که در بحثهای گذشته معلوم شد که اساس عرفان تصوف وحدت وجود و وحدت شخصیه هست به نحوی که اگر این وحدت وجود رو از اونها بگیریم کل نظام عرفان نظری و تصوف اینها از هم میپاشد و چیزی برای گفتن ندارند و اسکلت بحث های نظری و تصوف همین بحث وحدت وجود و وحدت شخصیه هست خب معلوم شد که اولا مفاد وحدت شخصی وجود یک مفاد خود متناقض هست و علاوه بر مشکلات درونی که خود این مفاد داره و قابل تبیین هم حتی نیست اینها توالی فاسده بسیار زیادی دارد که پذیرش این توالی فاسده مستلزم نفی خداییت خداس که اینها به حمدالله مورد بحث قرار گرفت بعد به حمدالله معلوم شد که اینی که اینها میگویند وحدت شخصی وجود یک حرف بسیار عالی است که ما این رو زدیم در عالم اسلام مثلا تحت تعالیم اسلام اینها طرح شده معلوم شد که یکی از ابتدایی ترین و منحصر ترین افکار بشری است که در هزارهای قبل از میلاد در اون هند باستان در اون اوج جنگل ها کسانی که دور از علم و بلکه حتی امکانات ابتدایی خودشون بودند اینها این حرف ها رو زدند به انها مختلف که و اتفاقا اونها تطبیق های دیگری نسبت به این ها بعضی این رو مثلا به آتش به چیزهای دیگری این رو تطبیق دادند و همینطور در یونان باستان این حرف ها رو ما میبینیم که اتفاقا ماتریالیست های اون زمان کسانی که مادیگرا بودند همین حرف به حدت شخصیه رو زدند و تطبیق به ماده کردند این یک وجود واحد رو از اینها معلوم شد که یکی از ترین و منحد ترین افکار بشر است و اینی که نمیتوانستند معنای خالقیت رو درک بکنند معنای ابداع رو درک بکنند معنای خلق لامنشی رو درک بکنند اینها معنای بساطت رو درک بکنند اینها به این حرفها دست زدهاند و معلوم شد که برای وحدت شخصی وجود هیچ دلیل عقلی وجود ندارد و همه عدل عقلی اتفاقا نافی وحدت شخصی وجود هست و همینطور هیچ دلیل شهودی برای این مسئله وجود ندارد علاوه بر اینکه حجیت شهود بسیار مورد سؤال و مورد مناقشه هست هیچ دلیل شهودی حتی شهودهایی که اونها برای وحدت شخصی وجود گفتهاند ربطی به وحدت شخصی و وحدت وجود ندارد و همینطور معلوم شد که در روایات اهل بیت اسمت و تهارت و آیات قرآن هم نه تنها که دریبی بر وحدت شخصی وجود نیست بلکه سر سر آیات قرآن و روایات اهل بیت اسمت و تهارت همه نافی وحدت شخصی وجود هستند و این رو رد می کنند لذا چیزی برای وحدت شخصی وجود باقی نماند و فقط یک فکر پوچ بی دور از اندیشه این فکر هست و السلام علیکم و رحمت الله و برکا.